اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاطر به علمك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم در روایاتش در سیدی جامال احادیس نورسه واجه الخلون، خلون، سرکی طبیعی قریب پنج هزار بار واجه الخلو یا خلون آمده که به معنای سرکه طبیعیه حالا از انگور عسکری یا سرکی طبیعی سیم چیزای دیگه هم هست کسانی که تو سن پیری هستن و درد مفاصل ناشی از خشکی مفصل دارن یا پی اضافی دارن یا حرکت خون در رکه هاشون به خاطر تسالب شرائی و مانند او رسوب زیاد دچار مشکل هست میتونن از سرکه طبیع سیب استفاده کنن دو قاشق چای در یک لیوان آب دو قاشق چای خوری. سرکه سیب در یک لیوان آب هم بزنه یواش یواش بخوره درد مفاصلشون خوب میشه اگر تمام مواد مورد نیاز بدن ترمین بشه تعادل فیزیولوژی بدن سرکه طبیعی سیب یک معجون نمونه است. سرکه طبیعی سیب یک معجون نمونه هست. هست. میتونیم از این سرکه طبیعی به نوع کمک اولیه یعنی یک اورژانس طبیعی، یک فوریت های پزشکی طبیعی استفاده کنیم در مواردی. از جمله در این 6 مورد مثلا اگر کسی پوست بدنش تماس پیدا کنه با گیاه گزنه یا کسانی که حساسیت دارن به چوب نوپان یا این دی اف و مانند دینا یا مشتقات پلاستیک یا کاوچو یا مواد پتروشیمی و اگزماهای مختلف پوستی مبتلا میشن یا شبه کهیر و مانند بود در صورت تماس پوست مثلا با گیاه گزنه دردهای شدید در بعضی ها تهوع و گاهی در بعضی ها بیهوشی پیش می آید نظیر بعضی هایی که مثلا اینها حساسیت دارند به نیش زنبور که دچار بیماری شوک آنافیلاک میشن و اگر با اورژانس نرسونیم این مرووم میشه. حالا بعضی ها نسبت به گیاه گزنه درست حالت خردگی پوست میاره اما بعض دچار تهوع میشن یا منجر به مرگشون میشه همیشه یک شیشه کوچیک که سرکه طبیعی تو جیبت باشه از جمله سرکه طبیعی سیب درختی تو جیبت باشه اگر این ور این ور بودین تو دش تو باق و ماننده اینها یه گیاه سمنی خار سمنی یا حساسیت داشتی به گیاه گزنه یه قسمت پوست بدن خراش برداشت بلا فاصله با محلول این سرکه روی این رو بکر دیگه این عوارض سو برات پیدا نمیشه حتی مال نیش گزنده که بمونه حتی جای گاز گرفتگی مثلا یک انسانی گاز گرفته میشه این اوله مثل کسانی که عصبیت جاهلیت دارن یا عصبیت ال دارن حالا اینجا مومن این میتونه اولا عصبیت جاهلیتش رو درمان کنه بینه مشابه درمانی رفتار درمانی که رفتارش با خودش منفی نباشه دومی که میتونه پیش یک متخصص طبیب متخصص بهداشت و درمان بره اینجا زدعفونی کنه محل گازگرفتگی چون گایی خود شخص به خودش آسیب میزن این محلو میتونه با محلول آب سرکه شسته شود تصال فهمده این یه بار گازگرفتگی گازگرفتگی انسان نیست اینه که گفتم واقعیت داره تو تاریخ اومده از چی و سنین روایت نقل نکه نیمتونم دنبال عصبیت جاهلیت را بیفتم یا دنبال عصبیت مدرنیته ما دنبال علم و یقین و رفتارهای مثبت و اخلاق حسنه و احیاء سنت رسول الله ایم. اما عملهایی که دست و پا چلفتی باشه یا عملهای حرام باشه یا اغده خالی کردن باشه یا آسیب رسانی به خود و دیگران باشه ما اینها قبول نداریم حالا مؤمنانگاهی میشه تو بحث خانو و خانواده این دوتا بچه ها با هم دعوا میکنم این زورش به این نمیرسه یا موی اینه یا میپره اینه گاز میکنه حالا زود پدر مادر آقل محل گاز گرفتگی رو با محلول آب سرکه حتما زد افونی کن حتما چون یه سری افونت هست از طریق باکتری های مزر که در فضای دهان و حلق بیش از پونسد نوع باکتری شناسایی شده که هفت الی هشت باکتری مزره شاید از اون باکتریای های موزر محل گاز گرفتگی ایجاد شده باشه سود باید زده افونی کنیم مؤمن که این مبتلا به پوستی بافت مایچه ای و همچین عفونت خونی نشه گاه محل گاز گرفتگی انسان نیست بلکه این شخصی که گاز کنده یا این کسی که گاز خورده گاز ازش گرفته شده حیوان به حیوان بوده مثلا فرض کن کبوتر داشتی مثلا مرغ و خروس داشتین حالا گربه پیدا یه گازشگنده یه خنجش کشیده شما رسیدی کیچش کردی گربه رفته حالا محل گاز گرفتگی حیوانو زود زده عفونی کن با محلول آب سرکه تا این کبوتر و مرغ و خروس آلوده نشه به بیماری عفونی و بعد شما این گوشت نخوری خودت مبتلا بشی به بی این بیماری عفونی یا این تخم مرغو نخوری که مبتلا بشی به بی این بیماری عفونی گرفتیم محمدات چی میگن؟ پس در این شرایط، تا وقتی که هنوز بیش متخصص بیماریای عفونی هنوز نرسیدیم یا اولین اورژانس نرسیدیم میتونیم از با فوریت های پزشکی طبیعی از محلول سرکه سیب سرکه انگور اسکری استفاده کنیم و محلو با سرکه خالص تمیز کنیم این شماره یک شماره دو در سرکه طبیعی سیب ماده‌ای وجود داره که به رشد جنین و به رشد جفت جنین تا آخرین ماه بارداری مادر کمک می‌کنه این آخرین تحقیقات علمی در اساس جدیدترین تحقیقات علمی تو بحث جنین شناسی در سرکه سیب ماده‌ای وجود دارد که برای رشد جفت جنین در طول بارداری مفید است. مطلب چهارم، اولیش مال تماس پوس بود با گیاه گذارن و ما ندیم. دومی دو. محل گاز گرفتگی، سومی در سرکشی مادهی است برای رشد جفت جنین، چهارم. کسانی که حتی دیابتی باشن یا کسانی که دیابتی نیستن قند بیمزه دیابت نوع یک یا قند شیرین دیابت نوع دو هم ندارن اما اضافه وزن داره یا پی اضافی داره در هر سمورد کسانی که یک سیب درختی شیرین رسیده شبا قبل از خواب بخورن قند خونشون در سطح عادی نگه داشته میشه ازدیاد قندخون نمیگه آرامش شبانه رو هم به دنبال داره. دیگه بیقراری شبانه و بیتابی روزانه براشون پیش نمیاد حالا تو روایات شیعه مومنا میگه اگر کسی میخواد خواب را حد داشته باشه شب ماست بخوره حال اگر کسی ماست اذیتش میکنه زنیان قاتش کن اگر کسی معده و رودش استرسیه یا استخون درده ناشی از سرد مزاجی که افت متابولیسم بازاله داره اینجا آویشن نعنا سعتر نعنا قاطی این ماستش کنه بخوره دیگه این ماست برای زرد نداره خواب شبانه هم راحت میشه درست شد مومنم؟ حال اگر کسی سرسوزه معده نداره یوبوسط مزمن هم نداره میتونه در بین روزم دو لیوان که در هر لیوان دو قاشق چای خوری سرکه طبیعی سیب بریزه از این محلول آب سرکه هم وسط روز و عصرانه بخوره بعد هر قضا که تو روایات شیع داریم که یکی از چیزایی که کمک میکنه به هزم غذا در معده چیه؟ خوردن یک سیب بعد قضاست چهار چیز تو روایات شیع امده یکی خربوزه یکی سیب درختی شیرین یکی دیگه مومنا خرما تمار یا رطب یکی دیگه هم بحث خود سیب بود سیب و خرما و خربوزه و انار شیرین رمان الحلم اینا فواید زیاد داره یکی از فوایدش اینه هر کدومشه که بعد از غذا بخوری کمک به هضم غذا در معده میکنه نمیگذاره سردل کنی یا رودل کنی یا تخمه کنی یا ترشا کنی. مخصوصا سیب درختی شیرین نمیگذاره مبتلا به ریفلاکس یا برگشت اسید به مری به تنهایی یا با محتویات معده بشیم. نمیگذاره صبحا که از خواب پشدی مزه دهن تغییر بد کنه و فضای دهانت مزه تلخی بده که در بیمارای قندی و به شما از کنم چربی خونو یا کسانی که یوبو مزمن دارن یا کسانی که ریفلاکسشون شدیده اینطوریه حالا این سیب درختی خیلی فواعد داره که تو روایاتشی هم اومده بعد غذا بخوری حالا مباعثه خودم. چهارم خوردن یک سیب پیش از خواب قند خون رو در سطحی عادی نگه میداره و آرامش شبانه رو به دنبال داره کسانی که از افونت های گوش رنج میبرند، مخصوصا بعد از حمام یا بعد از استخر یا لب دریا رفته برکه چشمه سارو اما قطع شنا کرده در اینجا قبلش باید پمده رو سفت میکرد آغشته به روغن زیتون تو گوشش میگذاش. تا تو گوشش آب نره که اگر میخواد بعضی سردرد ها و بعضی سوت های سرش خوب بشه شبا قبل از خواب پندر سکت میگه تو دو تا گوش که حیمونات موزی نره و یکی دیگه درد گوش و سوت سر در بعضی مواقع خاص نگیر تو استخرو همام و شنا مخصوصاً کسانی که نراحتی قلبی دارن یا اینکه پارگی پرده سماخ گوش دارن که پرده سماخ گوششون سراخ شده حالا یا جنتیکن اینجور بوده مومن ها یا در اثر ضربه یا صدای محیب از وعد و یا ترکیدن لاستیک ماشین مماننده او کپسول گاز یا راکت و موشک مماننده او. حالا پرده گوشش هم آسیب بیده اینجا حتما یعنی مستحب معکده اینجا حتما باید این پنبه رو سفت کنه که تو گوش فرونه نکش هم آقشته به روغن زیتون کنه بذاره تو استخ. حالا بره حمون بعد که از استخر حمام درآد میتونه ضدع افونی کنه با سرکه سیگ تا دوچار خا مجرای گوش نشه و واکس گوشش بیش از اندازه نباشه. چون اگر واکس گوش بیش از اندازه باشه یا رشد باکتریرییا در این مجرای گوش باشه خارج گوش میگیره. گاهی مریض به قدری میخارونه که مجرای گوشش خون بیا. و این سیکل معیوب رو هی تکرار میکنه درمان هم نمیشه یعنی هر بار هی میخاره اینقدر میخارونه تا خون بیاد درمان نمیشه در پزشکی جدید مؤمن ها تماد چشمی یک درصد تت و سیکلین روزی یک بار تیم مجرای گوش میکشی باکتریاش میمیره خارش خوب میشه بعد با محلول آب مقتر پزشگاه جدید تو تخصصی گوش حلق رو بینیم یا تو بحث ما تب مکمل، تب سنتی، تب گیاهی، یا تب بل معصومین میتونید با محلول آب سرکه مهمن داخل مجرای گوش رو تمیز کنید و واکس گوش هم در بیاری. در آن واحد هم شست و دادی گوشتو، رو کردی از واکس گوش هم زده افونی کردی مجرای گوشتو رو و باکتریای موزر رو اببین باردید این هم حاشیه ماها بر کتاب خارجی ها. مطلب ششم این حرفون با لاتای چال میدونیه در جای جای دنیا اگر لات یاف شود کسانی که شبنیشینی مبتذل دارن الکلیسمن شامپاین و ساکیو و چیزا میخوان شراب خورما شراب انگور نبیز خمر این چیزا نه خب کسی که مسکرات مصرف کنه یه عوارض سو داره یکیش هم ناراتی و دستگاه گوارش حال یک مرتبه یه حرف حقی از یکی از افراد حق میشنوه که بابا الکولیس بودن حماقت عملیه زایع کردن خود و اجتماع خانه و خانواده و اجتماعات بزرگتره و حیف و میل کردن پولی که با این جون کندن در آورده و اقتصاد همه جای دنیا هم به هم ریخته با این کم پولیه با این هزینه و در آمده خب حالا به دست خودش هم پولش نفله کنه هم جونش رو کنه حالا یه آقلی به من شما تذکر میده و رئیس الاغلا که محصونا میگه بابا جون مسکر نخور دوازده سند داریم و کلو مسکرن حرامون رسول الله نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله علی و سلم حرامان الخمر حرامون الخمرو حرامون و کل مسکرن حرام دوازه سنده بعضی جهاز حضرت می هر چیزی که سکر بیاورد چه مایه باشه چه جامد از جمله در جامدها مثل بنگ که به عربی میگن بنج میگه کسی که عمدن یک ماده مسکر میخوره این از من بریه و من هم از او بریم عجب به جای اینکه براعت از مشرکین داشته باشه شخص الکولین شخص بنگی چرسی هشیشی ماریجوانا، جوانا دولفین آوی اکستازین کسایی که بنگی منگی چه مایه بخورم چه جامعه اینا به جای این که براعت از کفار حربی و مفسدین فلرض و افراد مشرک به شرک جلید به جای اینکه از اینا براعت داشته باشه میاد از امام خوبان رسول رحمت رحمتن للعالمین میاد از این براعت میجه خب معنومه جهنمیه جهنمی زندگی کرده به جهنم میره حالا این اسلام ولایی این اسلامی که دین رحمته این اسلامی که صلح، این اسلامی که خوبی عمله میخواد آفیت و امنیت و سلامت فرد و اجتماع رو میخواد در جای جای جان میگه الکل مسکننده کننده مصرف نکن. الکول هایی هم که شبهه مز کنندگی دارد مثل اتانول مثل متانول و مثل به شما الکل کنم سفید و مانند او اینها هم در تماس پوست بدنت نباشد چون با درصد خاصی مز کننده می شود حالا تو مباعثه خودم آخرین پیشرفت‌های علمی میگه اگر شخصی قفلتن یا نسیانه یا اگر شخصی عمدن لات چاله میدونی بود عمدن الکل مز کننده خورد اما یک مرتبه یه حرف حقی شنید توبه نسوه کرد و عجب قلطی کرد حاجه با می اینا در من اثر نکنه هنوز که به ارژانس نرسیده که بره با ل ساکشن کنه و معدهشو تمیز کنه هنوز نرسیده میتونه اثرات تخریبی الکل مسکننده رو خونسا کنه با مصرف سرکه طبیعی انگور اسکری مخصوصا سرکه طبیعی سیب سرکه از این راه تولید شیره معده را تحریک و معده را در برابر نظرات الکل حرف میکنه سرکه یک ماده زدعفونیه سرکه طبیعی یک ماده عفونیه همان گونه که سرما صفر و زیر صفر میکروب هایی رو که باعث کپک زدن یا گندیدن خوراکی ها میشه از بین میبره نابود میکنه سرکه طبیعی هم همینجوره سرکه موجود در تمام ترشی ها قدرت اسیدی اونها رو بالا میبره یا اینکه این موجودات بینی رو بیزرر میکنه نمیگذاره آسیب به بافت داخلی و یا خالجی بدن بزن درباره بسیاری از مواد موجود در سرکی سیب تحقیقات علمی صورت گرفته که اثر مثبت آنها بر ارگانیسم انسانی نمودار شده تعییدم میکنه در سرکه سه تا ماده نگه است. یک جوهر سرکه یعنی اسید اسیتیک دو اسید پروپیون سه تنیک تو پرانتز بهمیست یعنی مازو پرانتز بهم پس در ضمن اسید سرکه که اسید اسیتیک یعنی جوهر سرکه یا مثلا اسید دیگه ای که بود مثل اسید سیترون در زمین اینها باز تو سرکه طبیعی چی موجوده مامنا اسید پروپیان موجوده این اسید پروپیان چیکار کار میکنه باعث سالموندن مواد غذایی میشه این تانیک که گفتیم مازو هست این ماده نگهدارنده طبیعی طبیعیه که از توفاله های سیب تهیه میشه تانیک همون رنگدانه های تلایی رنگ سیبه که در مجاورت هوا رنگش تغییر میکنه تیره میشه و گاهی قهوه میشه شما وقتی آب سیب میگیری یه چند دقیقه میذاریم و رنگش تغییر کرد این خراب نشده ها این همون اسید تانیکه اون همون مازوه ماده نگهدارنده طبیعی تانیک یعنی مازو از توفاله سیب تهیه می شود تانیک همان رنگدانه های تلایی رنگ سیب است که در مجاورت هوا سریع تیره و قهوهی می شود سرکه سیب مومنا حاوی اسید پروپیان که بود خاصیت نگه دارد. در بازار هم به شکل مصنوعیشی هست که این کمپوت ها و کنسرو ها می سرکه مومن سرکه طبیعی از جمله سرکی سیب یک میکروب کشه بسیار قویه تو بحث های تخصصی سلولی و ملکولی یعنی میکروبیولوژی مثل جاویتس آدلبرک دکتر عطهری دکتر همتی دکتر محبین خب حالا اینم یه خارجی دیگه مارگوت هلمیس سرکه به عنوان مادهی پاک کننده از سالها پیش استفاده می شود. مال پاک کردن ظروف تخته های کوچک ظروف آشپزخانه اجاق گاز انواع سطل ها شیشه اساسی منزل حتی لباس ها و چیزهای دیگه مثل پوست مهم مهمنه یا سرکه بریزی تو سماور یا کتری که لای بسته گچ گرفته مثلا فهم که بیست دقیقه که به جوشه بعد دیزاره تا خوشه همه اینا میشه می شه به قول منشدگاه میشه می میشه خورد می بگه نمیخواهی کاردک بزنید که بکنیم که این ظرفت تو رخشیم درست شد این یک مطلبی که گفتیم سرکه تعدادی از محرک های میکروسکوپیو که عامل بیماری هست عبه میبره مخصوصا میکروب هایی که به پوست انسان حمله میکنن میکروب هایی که به سینوسا ها حمله میکنن بخور سرکه میکروب هایی که به اندامه تنفسی فوقانی حمله می کنن صدری فوقانی بخور سرکه مسانه تو بحث نوشیدنش کنم چجوری روزی یکی دا لیوان محلول آب سرکه بخوری که تو هر لیوان دو قشق چای خوری سرکه طبیعه سیب باشه به خصوص میکروب هایی که به پوست و گلو و اندام های تنفسی و مسانه یا دستگاه گوارش حمله میکنند. حتی بحث سرکه هیپوکرات تبین که از هزار و, هزار و سال قبل مطرح بوده یک ماده ی و, و میکروب کشه در درمان زخم‌ها افونت های روده حتی تو جنگ جهانی اول در درمان در زخم‌های روده میده پوس اونجا جنگ جهانی اول جنگ جهانی دوم اینجا تو اورژانسشون یا خود سربازه همراهشون چی بود؟ اما سرکه بود حتی یکی از دزدی‌های های شاید در اروپای شرقی و غربی بعد از جنگ جهانی دوم دزدی سرکه به خاطر اینکه سرکه خاصیت ضد عفونی و میکروپ کشی داشت سرکه خیلی کمیاب بود از هم دیگه تک میزنه کتاب های خوششون هم داره مثلا اینجا خود خارجیه میگه آقای مارگوت تلمیز تو کتاب معجزه سرکه سیب صفحه 66 ایشون میگه در زمان شیوع بیماری وبا در اروپا دزدی سرکه چون تلفات انسانی بعد از جنگ جهانی دوم از طریق بیماری های افونی تاون تا و وبا خیلی بیشتر بود تا اصل جنگ جهانی دوم حالا تو قسمت وبا حداقل اینکه این که در زمان شیوع بیماری وبا در اروپا دزدی سرکه به شدت رواد داشت. دوزده هایی که که تا پایشان را سرکه می تا انگام ورود به یک خانه و برخورد با بیماران مبتلا به وبا این بیماری با آنها منتقل نشهد. تو بین است عواز و ارژانز ها که از هم تک می زنن. گرفتیم چی شد؟ حالا مومن ها تو مباعثه خودم. تو بحث درمان زخم ها یا عفونت های روده میتونید از محلول سرکه یا سرکه خالص استفاده کنید این که بهتر از تنتور یوده که میریزی که ضد افونی کنی محل زخم یا برودگی یا سوختگی رو که مریضم چیز زبیلیز دستانیش جایی جیغش درن جای اشقش می جایی خب میشه شما میتونید از سرکه طبیعی استفاده کنید که یک باکتری کش و ضد عفونی کننده قوی میتونی یک جایگزین بذاری میتونی به جای الکل اتیلیک یا الکل صنعتی که رو بدن مردم میکشین که نیم‌دلم تو تزریقات آمپول بزنین، آمپول زبدتاب و آمپول پنسیلین ما مانند او یا سرم واس کنی. خب چرا تماس بدید به پوست مردم الکل سمیرا که الکل اتلیک، 보세요 چرا الکلی خوبه تو آزمایشگاه؟ نه به پوست مردم و عروق مردم و خون مردم میتونیم ماهی جایگزین بذاریم و اونم سرکه سیب محلی که میخوایی سوراخ بس کنی یا محلی که میخوایی آمپول بزنی اول این محل رو با سرکه خالص سیب صد دفعه‌ای که موامله بعد حالا آمپول بزنید چرا ما علاوه بر از قارچ و شق دهن می‌گیریم می‌تونید محلول قوی ضد عفونی جایگزین بذارید تازه می‌شه به چپ خلاص الکل مثلا می‌گید مردم علکی علکی فکرشون درست کارانه می کنه قط می زنن جده خاکی می رن تمرکز فکرشون از دست میدن، دن های خونه می گرن مسمونیت های داخلی می گرن. چرا مردم رو به انواع الکل مبتلا می الکل طبیعی برای بدن مفیده با دوز کمش مثل اینکه که مرکبات می خوره. میوه نارنج می خوره پرتقال پرتگال لیموشیرین می خوره گریب این با دستش یا با چاقو پوستش میکنه یه مختصر الکل پوست اینها رو دستش هد که بعدم میبره میخوره ها مقدار الکل مورد نیاز بدن از طریق اینها فراهم شد دیگه لازم است که پوست اینها رو بخورن که بعدیشون آشپازی های عجب و عجق دارن مومنم از پوست اینها برم دارن میکنن که چند بار بدوشه بعد باید بریزه دور اینه مسموم میشه همون جون مربای اصلش درست کنید عدو اطفال چیه؟ یا اینکه که یه مصنوعی صنعتی بخورده مردم میدن یا تو نوشابه از تو آب میبه شیمیایی شونه و خیلی چیزهای دیگه این کار نکنین نکنیم مؤمنان حتی اگر حرام هم نباشه بله الکل مصنوعی مصنوعی حرامه و اگر مصنوع کننده باشه خوردن سم حرامه شرب و سمه حرامه درست شد مؤمن یا ازباب مست کنندگی حرامه ازبابی که مسکره کلو مسکرن حرام یا ازباب ایجاد مسمومیت حرام میشه وقتی بخوره شربستمه حرام ما میگیم از ماهی استفاده کن که مسمومیت نیاره نر... حرمتم نداشته باشه به نفع بشر هم باشه هم به نفع پوستشه که لکه های پوستی و ککومکشه ببره اگزمای پوستیشو درمان کنه آفتاب سختگی نگیره شما اسکل هم محل مال تزریقات و ضد عفونی میکنید که آلودگی خونی نگیره به خاطر این سرم یا آمپولی که میزنه محل نیشه این آمپول یا این سوزن ضد عفونی شده باشه با سرکه برای درمان زخها یا های روده از سرکه طبیعی استفاده میشد و سربازها هم حتی در جنگ جهانی اول و دوم ها زخم‌هایشان را با دستمال های به سرکه سیب تمیز میکردن تا چند تا بیماری نگیرم؟ یکی چیه مومن ها زخمای افونی قانقاریا یا پوسیدگی بافت نگیرم. یه با دیگه مومن هست واکسن میزنم تو پزشکی جدید یه جا زخم میشه یا گلوله خورده یا مثلا چاقو خورده تیخ خورده میگن زود برو آمپول کزاز بزن تا بیماری آفونی کزاز نگیم وقتی ما سریعا محل زخم یا گلوله ممانند او رو با سرکه چکار کردیم زده آفونی کردیم یا قسمت قانقاریا ها اینجا دیگه بقیه باف شروع به پوسیدگی نمیکنه. کنه پوسیدگی باف توقف میشه این محل مومنها چکار میکنه سلولای بنیادی پوست و عضل فعال میشه سلولهای های جایگزینه از دست رفتهی سلول های مرده قبلی بافت هم به هم میاد رد زخم و جراحت روی پوست نمیمونه این از فواید سرکه طبیعی و همچنین زرچوبه خالصه که در محل زخم ها با سرکه طبیعی بشه بعد که خوش شد در مجاورت هوا با یک گاز استریل که از داروخانه خریدی غیر راغنیه روی محل زرچوبه خالص می این گاز استریل روش می با بان می بندی روزی یک بار شست با محلول سرکه طبیعی استیم بعد در مجاورت هوا که خوش شد بعد روش زرچوبه خالص گاز استریل می با بان روش می تمام تام شده دیگه تنتوره ید و آب مقتر و بتادین و یعنی می دونم این قندی در میون پاشه بذاره تو محلول ساولان که یه ضد عفونی کننده قوی شیمیایی هیچ کدام اینا لازم نیست. مریضتم از این زخم های عفونی زودتر خوب میشه قابل ارز به همه متخصصین بیماری های اوفونی تو بحث زخم های فونی خارجی و تو بخش سوختگی های نوع و دو و تو بحث اورژانس ها بیمارستانا. حتی بیمارستان های خودمون که تو مشهد آن مثل بخش سوختگی بیمارستان قائم اصلا فرمودین مامنا برای همشون خوبه مامنا برای افرادی هم که این طرف این طرف میرن حتی خارجی میگن میگن تو جیب یه شیشه سرکه کوچیک باشه این یک اورژانس فوریه یک داروخانه کوچک حرف خودمون نگرفتم دادن به خودمون میگن وقتی ما مسلمانا یا بقیه انسانا عمل نکنیم به حرفای خودمون و خارجی بره ایور ایور گیر بیاره عمل کنه کتاب بنویسه مالیدن سرکه طبیعی انگور اسکری یا مالیدن سرکه طبیعی سی برسیده به تمام بدن باعث حفظ انسان در مقابل بیماری وبا که به اصطلاح عرف مردم تو اروپای میگن مرگ سیاه به بیماری وبا میگن مرگ سیاه. آدم مبتلا به بیماری وبا نمیشه بله بعضی چیزا رو باید وعایت کرد یعنی قضاها و آشامیدنی ها همه باید در پوش داشته باشه چون بیماری وبا مؤمن این میکروبش مؤمن سریع روش میکنه تو مایه مخصوصا تو آب پس این ظرفای آب یا شربت یا غذا همه باید در دربسته باشه درباز نباشه مناطقی که وبا اومده مثل جاهایی که سیل میاد زلزله میاد طوفان میاد یا بمباران هوایی شده یا موشکباران راکت بارون شده چون جسد احشام یا بعضی انسان ها رو زمینه و اینا فرصت دفن سریعا پیدا نمیکنن در اون محیط بیماری وبا بیماری تاون، بیماری تیفوس شیوع پیدا میکنه برای رعایت بهداشت فردی و اجتماعی و رعایت حفظ قضای بهداشتی بسیار مهم حرف اول میزنه اگر نه این بیماری ووا و تاون و تیفوس حالت اپیدمی میشه فراگیر میشه و خزینه درمان بالاتر میره تلفات انسانی بیشتر میشه اینجا هم حاشی زنم با خودکار پیمه کلمه گفتیم پیشگیری و درمان با سرکه مثلا اگر کسی گلو درد داره میتونه قلقلقه کنه با محلول آب اگر کسی التهاب گلو داره باز میتونه با محلول آب سرکه قلقلقه کنه اگر کسی التهاب گلو یا التهاب لوزه و تورم لوزه داره توعم با تورم لثه میتونه مز کنه و در دهان بگردونه و قلقلقه کنه محلول اگر کسی التهاب مثانه داره گردهای زیرنافی به سب که التهاب مسانه و یا التهاب کلیه داره و سوزش ادرار اینجا میتونه هم قرغره کنه مزمزه کنه محلول آب سرکه رو و هم از محلول آب سرکه بنوشه غیر از اینایی که مزمزه رو قرغره کرد که باید بریزه بیرون و تو دهنش بریزه بیرون بعد یک لیوان دو لیوان محلول آب سرکه وسط روز عصرونه بخوره تا التهاب مسانه التهاب کلیه و سوزشه ادرار که ناشی از باکتری شایی شدنه هایا گاهی عفونت کلیه داره گاهی افونت حالب داره گاهی افونت مسانه داره گاهی التهاب پروستاد داره به خاطر وجود باکتری مضر در پروستات. لذا سوزش ادرار داره در هر مورد چیه؟ مزمزه کنه قرغره کنه با محلول آب سرکه بیرون بریزه ولی در روز یکی دو لیوان محلول آب سرکه بخوره که دو قشق چای خوری در یه لیوان آبه وسط روز اسونه. اینا همه با هم خوب میشه کسانی که صرفه خشک دارن کسانی که صرفه خشک دارن محرک ها رو باید ترک کنه یکیش شکلات، شکولات، کاکاو، نسکافه یکی دیگه چیه؟ صخ کردنی، تفتادنی، بودادنی و تو ها نارنگی این دو قسم رو که مزر تحریک صرفه های خشک میکنه ترک کنه حالا میتونه سلفه های خشکش رو درمان کنه یکیش مباعثه خودمونه چیه؟ بخور آب سرکه یعنی سرکه رو اندازه یه قاشق پلو خورین. میریزه تو دستگاه بخور که آبم توش داره این بخور سرکه آب سرکه رو که تنفس کنه با بینی با دهن سلفه های خشکش قدر میشه دوم خوردن میوه خورمالون یکی دو تا وسط روز عصب خور سوم اگر صرفه های خشکش مکرره که زیر دلش درد میگیره یا اگر حامله هست زن رو بینی میافته یا اگر مرد و زنه یا اگر پسر و دختره دردهای زیر دندای سینه و ستون فقرات پشتی میگیره از کسرت صرفه کردن حالا صرفه مزمنه چند ماهه یا چندین ساله اینجا مخلوط سه چیز رو بخوره در آبجوش بلر یکی شکر تیغال یعنی دوم است یک گیاه دوم زوفا سوم انداب سه مسقال چهار مسقال پنج جدا جدا اینا رو پودر کنه فخانه آسیاب کنه ستاش قاتی کنه هر روز یه قاشق چای خوریم از این مخلوط رو بریزه توی استکان روش آبجوش بریزه پن دقیقه ده دقیقه صبر کنه هم بزنه قرقره کنه قورت بده برای اینکه خواب شبانش هم راحت باشه و این صرفای خشکش بیدارخوابی در او ایجاد نکنه بیقراری شبانه ایجاد نکنه خوابش سبک نشه و از خوابم نپره با صرفا شخص از خواب میپره و نفس هم خیلی میکنه نفس تنگی و آسمم داره این شب قبل از خواب این تکرار کنه یا صبح قبل از اینکه سر کار خونه یا بیرون بره صفای خشک مزمنش هم خوب میشه کسی که عفونت های روده‌ای خفیف داره نوشیدن محلول آب سرکه کسی که بواسیر مقعدی داره همراه با خارش مقعدی خب درمان بواسیر هماری در صلاه قبل گفتم خارش مقعدی سال قبل گفتم حالا فرض کن هر دو همزمان داره اینجا محلول آب سرکه هم بخوره هم با یک دستمالی مرتوب کنه به سرکه سیب و در محل مقعد بذاره یعنی بخ... همراهش باشه اینه پوشک بچه میگه همراهش باشه اینجا هم بواسی خوب میشه هم خارش مقعدی اذیتش نمی کنه جرمانهاش هم هست یعنی اگر بواسیر خونی داره دیگه نمیخواد لاپاراسکوپی بره یا شیمی درمانی کنه یا نمونه برداری کنه بیوز کنه از رود آنال، نه لازم نیست. در بواسیر خونی صبح و شب یک قاشق چای خوری پودر سماغ میخوره یکی صبح یکی شب به همراه نهار و شام میشن تره و سبزی خرفه سبزی تره چه زراعی چه وحشی که تو شمال ده میاد استان مازندران یه مش تره با نهار میخوره با شام میخوره یه مش سبزی خرفه با نهار میخوره یا شام میخوره اگر با دستگاه ورقه هیتر یا جلو پنکه این سبزی ها رو خوش کرده یه قاشق بخوری پودر تره که یه قاشق بخوری پودر خرفه رو با نهار شامش میخوره از روز سوم درد پایین تنه مریض خوب میشه، پماد هموروید نمیخواد. به دو هفته بواسیر خونیش خوب میشه. اگر بواسیرش بادی بود، دو خوشه انگور با هسته بجو یا یک لیوان آب انگور که با هستش له شده بخوره. به سه روز درد پایین خوب میشه، به دو هفته بواسیر بادیش خوب میشه. اگر بواسیر یا بیماری همورایی چه داخلی چه خارجی دگمه ای یا ساجمه ای بود بی فرمایش امام رضا علیه سلام کنه روزی دو عدد مغز گردو درسته رو با یک قاشق چای خوری پودر زنیان هاووم، وم نانخواه بخوره اگر عرق زنیان بود نصف استکان عرق زنیان با دو مغز گردو بخوره بواسیر دگمه ای یا ساجمه ایش خوب میشه اگر خارج مقعدی داره که علامت کر یا کرمک یا انگل در روده یا میده است که گاهی در بچه کوچیکا رخ میده به خاطر اینکه دست نشسته قضا میخورن تو دهن میکنن اینجا مغز تخمه خام هندوانه تخمه ژاپنی است راحتم شکسته میشه از آجیل فروشی یا خوشک بارا بخوایی تخمه خام هندوانه همه هندونای عادی که میخوان مردم روزی یک مش بخوره یا یک قاشق پلو خوری مغزش بخوره زده انگله زده کرمکه زده کرم میرم توضیحاش دادم حالا یک کمک درمان قوی محلول آب سرکه سیب بخوره و همچنین دستمال آغشته کنه به سرکه سیب در محل مغز بذاره عین پوشک عین نوال بهداشتی تصال فرمیدیم؟ همراهش باشه اینجا هم بواسیر کمک میکنه به درمانش مومنان و هم خارش مقعدی خوب میشه که بچه بیتابی نکنه و هی پشت هم به دکتر مراجعه کنی لوسیان های پوستی مختلف یا پماد های مختلف مثل همورایید بدن که تا وقتی که میزنی خارش خوبه یا درد مقعدی خوبه که ناشی از بواسیر بود اما وقتی این لوسیان یا این پماد همورایید نمیزنی دوباره دو تا بیماری درمان نیست مسکنه. همه درمان همونایی بود که مومنا توضیح دادن اگر زخما و جراحات باشه مالیدن سرکه سیب در محل اگر بوی بد بدن و عرق ریزش بدن زیاد باشه اینجا مومنا بخواهیم کم عرق بشه بدنش عرق کم کنه و کم بو بشه یا پوست بدنش خوشبو بشه عرقش هم خوشبو بشه خب یکی از این چیزا چیه؟ قبلانا گفتم پودر حنا قبل از حمام بدنش خیس کنه، پودر حنا قبل از حمام به کل بدنش بزنه. بعد خودش یه 5 دقیقه 10 دقیقه صبر بعد خودش بشوره. بعد از حمام هنوز خودشو با لان یا حوله خشک نکرده، پودر زمه پودر زمه بزنه. حالا عرق بدنش کم میشه و کمبو دومی چیه؟ که هم پوست بدنش خوشبو بشه هم عرقش خوشبو بشه هم اگر تنبلی روده بزرگ داره حرکات دودی شکل روده بزرگ کرمی شکل روده بزرگش کنده متعارد بشه یعنی یوبوسط مزمنش هم خوب بشه پوست بدن خوشبو عرقم خوشبو یوبوسط مزمنم خوب بشه روز یک قاشق بخوری پودر. گلبرگ گل محمدی با عسل رقیق شده بخورم یا یک استکان گلاب طبیعی قربون همین ایران اسلامی قمصر کاشان یک استکان دومنا گلاب طبیعی بخورم هر سه انجامش. انجام میشه هم پوست بدن خوشبو میشه هم عرقش خوشبو میشه هم یبوست مزمن خوب میشه که نشاط تنبلی روزه بزرگ باشم حالا مو خودم که مو امروز امروزم زنم برای درمان عرق زیاد و بوی بد بدن سرکه سیب را میمالیم بر سطح پوست بدن و ماساژ میریم مخصوصا جاهایی که زیاد عرق میکنه مثل زیر بقل ها کسی که التهاب یا تمرم پوست داره دیدید بعضی همون اگر زانو به پایینشون ورم میکنه دمپایی کفش خودش خودشه پاش تو دمپایی و کفش خودش نمیره یه بار خوراکی میخوایی موامنا محلول آب سرکه آشان میدنی قبلن گفتن یکی دیگه قبلن گفتم چی بود؟ سیاه دونه با اصل شبا قبلن خواب خیلی فواهد داشت یکی چی بود؟ ضد نفریت ضد ورم مخصوصا ورن های زانو به پایین حالا یکی هم مباعثه خودمونه محلی که ورن داره از توس یا ازاله اینجا شما سرکه یه سیب رو در اون محل به مالی ها ورن میخوابه. چون توهی میکنه نسوج رو از مایع اضافی و هوای اضافی بیماری قارچی بین انگشتان پا بیماری قارچی بین انگشتان پا کف پا گاهی بعضی ها بیماری های قارچی میگن اینجا یادتون باشه حتی در کسایی که دیابتی یا کسایی که دیابتی نیستن اما پاشون تو کفش زیاده. مثلا تو محیط کار شیفت و قالی هم نیست مومنه خب. زمینه. مجبوره که پاش تو کفش باشه. فرس کنون چله تابستون یا اگر کشاورزه یا باقداره یا سرباز و سرهنگ و افسره. نم تو پر بیابون تو دشت و جنگل و ای حالا بخوایم بین انگشتای پاش قارچ نگیره، پوستش نپوسته، بوی تعفن نگیره، کف پاش پوست پوسته نشه، کند نشه. از بیماری قارچی. اینجا روزی یک بار با محلول آب سرکه یه چند دقیقه تو محلول آب سرکه باشه. و بعد با سرکه خالص بین انگشتای پا و کف پاش رو بکشه. هم عرق اضافی نمیکنه، هم بوی بد نمیگیره. هم پوسیدگی بافت پوس نمیشه به خاطر بیماریهای قارچی اللهم صل على محمد و محمد و اجن